سلام و سلام به شنونده های عزیز داستان این قسمت عاشق غریب روزی بود و روزگاری عاشق غریب پسر فقیری بود که آشق شاه سنم شده بود شاه سنم دختر مرد ثروتمندی بود که او هم عاشق غریب را خیلی دوست داشت آشق کارش نواسندگی و خانندگی بود تاری داشت که در قهوه خونه ها و جشن ها با اون میزد و هنگام تار زدن با صدای خوبی که داشت آواز میخوند. روزی شاهسنم به چشمه میره تا آب ببره. آشق غریب رو میبینه که اونجا منتظرشه. آشق غریب میگه اینجا کار کاسبی خوب نیست. باید پولدار بشم تا بتونم با تو عروسی کنم. برای همین میخوام به شهر تفلیس برم و کار کنم. وقتی پولدار شدم برمیگردم و از تو خواستگاری میکنم، ولی تو هم باید در این مدت به من وفادار باشی و با کسی دیگه ازدواج نکنی. بعد انگشتر از انگشتش در می رو به می ده و به شاه سنم میده و میگه هر وقت با من کار داشتی این انگشتر رو با قاصدی برام بفرست. به این ترتیب از یکدیگه خدافسی می‌کنن و عاشق غریب روانه تفلیس میشه. چند سالی میگذره و ولی وضع آشق غریب خوب نمیشه. شاهسنم رو برای شلت که پسر پادشاه اون بخ بود خاصکاری میکنن با اینکه شاهسنم مخالف بود پدرش قبول میکنه و روز عروسی رو, رو تعییم میکنه. آخه تو زمان های قدیم دختر نمیتونست خودش تصمیم بگیره و هرچی پدر میخواست همون میشد. شاهسنم نمیدونست کار کنه؟ یک روز به چشمه میره و کنار چشمه میشینه و گریه میکنه. و از سواری به چشم نزدیک میشه و از شاهسنام میخواد که یک جام آب به اون بده. شاهسنام جام آبی به سوار میده و از اون میپرسه که کجا میره. از سوار گفت که به تفلیس میره. شاهسنام خوشحال میشه و انگشتری رو که عاشق غریب به او داده بود از اون انگشترش در میاره و از سوار میگه خواهش میکنم به تفلیس که رسیدی این انگشتر رو به عاشق غریب بده. و بگو که شاه سنم گفته هر جا هستی زود خودتو برسون. از سوار گفت اتفاقا میشناسمش. حتما پیغامتو به اون میرسونم. از سوار رفت و رفت تا به شهر تفلیس رسید. به قهوه خونه ای رفت که آشق غریب تو اونجا بود و همیشه اونجا میخوند. انگشتر به اون میده و بهش میگه که شاه سنم گفته هر جا هستی زود خودتو برسون. آش غریب از سوار تشکر میکنه و هرچه زودتر روانه شهر و دیار خودش میشه. وقتی به شهرشون میرسه فوری به خونهشون میره. میبینه که مادرش از دوری پسرش انقدر گری کرده که چشماش نمیبینه. آش غریب مادرشو در آغوش میگیره و گریه میکنه. آش غریب خواهر زیبایی داشت. از خواهرش حال شاهسنامو میپرسه. خواهرش میگه امروز روز عروسی شاهسرمه شاه ولد میخواد با اون دواج کنه. آشق غریب تارشو بر میداره و از خواهرش میخواد تا اونو به محل جشن ببره. وقتی به محل جشن رسیدن کارری میشینه و شنم رو در لباس عروسی کنار شاهولد نشسته بود نگاه میکنه. قلب عاشق غریب به درد میاد ولی کاری از دستش ساخته نبود خاننده و نوازنده ها از بس که خونده بودن و نواخته بودن دیگه خسته شده بودند. دیگه دست از کار کشیده بودند تا یه کمی استراحت کنند. آشق غریب که چند سال تو قربت بود و از گرد راه به محل جشن آمده بود نتونسته بود به سلمونی بره و و صورتی پر از مو داشت اون مثل درویش ها شده بود کسی اون رو نمیشناخت حتی شخصنم شاه سنم نشناخت همه فکر میکردن که درویشیه که به محل جشن اومده و برای همین از او پرسیدن چه کاری براش میتونن بکنن تا خوشحال بشه آشق قریب گفت چیزی نمیخوام فقط اجازه بدین تا کمی تار بزنم و بخونم شاه که قلب خیلی مهربونی داشت میگه بگذارید که این مرد درویش بخونه آشق غریب تارش رو سینش میذاره و شروع به نواختن میکنه چنان قمگی و دلنشین تار میزنه که دل هر شنبنده ای رو به درد میاره در حالی که تار میزده شروع به خوندن میکنه و این جمله ها رو به زبونش میاره شاه سنم عزیز در لباس عروسی چقدر زیبا شده ای سالها به خاطر عشق تو کار کردم و اما پولدار نشدم به خاطر عشق تو راه چند روزه را یک روزه طی کردم. به خاطر تو به قربت رفته بودم و به خاطر عشق تو برگشتم. اما چه فایده که فلک دلش به حال من نسوخت و تو عروس کس دیگه ای شدی. همه حاضرار حاضران از شنیدن آواز اون راحت میشن و عشق به چشماشون میاد. شاهسنم فهمید که اون کسی جز گمشده خودش عاشق غریب نیست. اشک از چشماش سرازیر میشه و قطره اشک از گونش بر دامنش میریزه. شاهولت علت گریه رو از شاهسنم میپرسه. شاهسنم میگه این شخص کسی نیست جز عاشق قریب. کسی که با تمام وجودم دوستش دارم. شاهولت دلش به حال اون دو آشق میسوزه. دست عاشق غریب رو میگیره و دست شاهسنم رو تو دست اون میگذاره و برای اون آرزوی خوشبختی میکنه و با خودش میگه خدا رو خوش نمیاد که دل دو نفر رو بشکنم تا خودم خوشبخت بشم عاشق غریب هم دست خواهرش رو میگیره و تو دست شاه میذاره شاه من میبینه که خواهر عاشق غریب تو زیبایی چیزی از شاهسنم کم نداره اونم اونو به همسری خودش میگیره و دستور میده تا هفت شبانه روز جشن و شادی برقرار باشه امیدوارم که از این قصه خوشتون اومده باشه سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه استههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها ها و شاهان، با اصفهای های تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای دیو و غول و پری رشادت های قصهها قصه ها همه و همه و همه, همه, و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی ادساین مهران دوستی